شش، ساختن اهرام انقلاب کشاورزی یکی از بحث برنگیسترین وقای تاریخ است. بعضی از طرفداران ادعا می کنند که این انقلاب بشریت را در مسیر رفاه و ترقی قرار داد. دیگران آن را منشأ تباهی بشر می‌دانند و تأکید می کنند که این یک نقطه چرخش بود که باعث شد تا انسان خردمند رابطه نزدیکش با طبیعت را از دست بدهد و به سوی حرس و از خود بیگانگی بشه تابد. این مسیر در هر جهتی که بوده باشد راه برگشتی نداشت. کشاورزی چنان باعث رشد سریع و گسترده جمعیت شد، که اگر هر جامعه کشاورزی پیچیده‌ای به دوران شکارگر خوراکجو باز میگشت دیگر قادر به حفظ خود نبود. در حدود ده هزار سال قبل از میلاد، پیش از گذار به کشاورزی، زمین زیستگاه 5 تا شش میلیون خوراکجوی عشایری بود، اما در قرن اول میلادی تنها یکی دو میلیون خوراکجو باقی مانده بود عمدتا در استرالیا آمریکا و آفریقا و این تعداد در مقابل دویست میلیون کشاورز رو به زوال میرفت اکثریت عظیم کشاورزان در قرارگاه های دائمی زندگی میکردند و تنها معدودی چوپان چادرنشین وجود داشت سکونت دائمی باعث کوچکتر شدن چشمگیر مساحت چمنزارها شد شکارگر خوراکجویان کهن معمولاً در سرزمینهایی به پهنای دهها و حتی صدها کیلومتر مربع زندگی می‌کردند. خانه برایشان تمامی قلمرو زیستی با تپه‌ها، رودها، ها و آسمان بازش محسوب می‌شد. اما کشاورزان اکثر اوقات روزانه خود را در مزارع کوچک یا باغها کار می کردند و زندگی خانگیشان محدود بود به یک بنای چوبی، سنگی یا گلی به وسعت دهها متر که خانه نامیده می شد. کشاورز معمولی یک پیوند بسیار قوی با این خانه به وجود آورد. این انقلاب گستردهی بود که به یک اندازه تأثیرات معماری و روانی به دنبال داشت. از این پس پیوند با خانه من، و جدایی از همسایگان به نشان روحی یک وجود بسیار نیرومندتر خودمهور بدل شد سرزمین های کشاورزی جدید نه تنها بسیار کوچکتر از قلمروهای خوراکجویان کوهن بودند بلکه بسیار غیر تر هم بودند شکارگر خوراکجو نظر از استفاده از آتش تغییرات آگاهانه چندانی در سرزمین که زیر پا میگذارد، به وجود نمی آورد. اما در عوض کشاورزان در جزایر دستگاری شده ای که با زحمت زیادی در طبیعت وحشی ایجاد می زندگی می کردند. آنها درختها را قطع می کردند، آب را هفت می کردند، را همبار می کردند، ساختمان بنا می کردند، زمین را شخ می زدند و در ردیف های منظم درخت میوه می, می کاشتند. زیستگاه های مصنوعی به وجود آمده تنها برای انسانها و گیاهان و حیوانات خودی قابل استفاده بودند و اغلب با حسار و پرچین دیوار کشی میشدند. خانواده کشاورزان تمام تلاش خود را میکردند تا علف های هرز را ریشهکن کنند و حیوانات وحشی را از خود برانند. اگر این مزاحمان به داخل رخنه میکردند به بیرون پرتاب میشدند. اگر مقاومت میکردند خشم انسانی به راهجویی برای انهدامشان میپرداخت سختترین مقاومتها در اطراف خانهها میشد از آغاز دوران کشاورزی تا به امروز، میلیاردها انسان مسلح به ترکه و مگسکش لنگ کفش و سموم، جنگی بی امان را بر علیه مرچه های سختگوش، سوزکای بدجنس، انکبود ماجراجو و مارمولک‌های های راه گم کرده که همیشه به خانه مردم رخمه کرده اند به راه انداختند. در اکثر طول تاریخ این حصارهای انسان ساخته بسیار کوچک در احاطه طبیعت وحشی گسترده بودند کل مساحت زمین در حدود 510 میلیون کیلومتر مربع است که 155 میلیون آن خشکیست، است تا سال 1400 میلادی اغلب کشاورزان به همراه گیاهان و حیواناتشان روی هم مساحتی برابر با 11 میلیون کیلومتر مربع یعنی 7 درصد از این مساحت را در اشغال خود داشتند سایر نواحی یا خیلی سرد بود و یا خیلی گرم یا خیلی خشک و یا خیلی مرتوب و یا به نوعی برای کشت نامناسب بود این میزان ناچیز 7 درصد صحنه حوادث تاریخ بوده. ترک جزیره دستکاری شده برای مردم دشوار مینمود. کشاورزان نمی توانستند خانه و مزرعه و انبار غذای خود را ترک کنند بدون اینکه متحمل خطر از دست دادن آنها باشند. به مرور زمان کشاورزان مایملک و اشیای بیشتر و بیشتری اندوختند که به راحتی قابل حمل نبودند و این آنها را به محل زندگی زنجیر می‌کرد. کشاورزان کوهن شاید در نظر ما مردم فقیری جل کنند، اما مایملک یک خانواده معمولی کشاورز از مایملک کل یک قبیله خوراکجو بیشتر آینده فرا می رسد. در حالی که فضا در جامعه کشاورزی کمتر می شد، زمان کشاورزی طولانی تر می شد. خوراکجویان وقت زیادی برای فکر کردن به هفته یا ماه بعد نمی گذاشتند. اما کشاورزان در خیالات به سالها و دهها سفر میکردند. خوراکچیان آینده را نادیده میگرفتند زیرا ناچار بودند تمام توجه خود را روی فراهم کردن غذای آن لحظه خود متمرکز کنند و برای ذخیره متعلقات و غذا با مشکل روبرو بودند. اما طبعا برای آینده خود برنامه داشتند. آفرینندگان نقاشی های قار شووه، لاسکو و آتااممیرا قطعاً میخواستند کارهایشان را برای نسل های آینده به یادگار بگذارند. اطلافات اجتماعی و رقابت سیاسی پدیدههایی دراز مدت بودند. اغلب سالها طول میکشید تا بتوانند لطفی را جبران کنند یا تعرضی را تلافی کنند. با این وجود در اقتصاد گذرای دوران شکار و جمعوری خوراک برنامه ریزی های طولانی مدت همیشه محدودیت های معین خود را داشت. در عوض زندگی در زمان حال آنها را از قید نگرانی آینده رها میکرد. نگرانی برای چیزهایی که خارج از ارادهشان بود بی مورد مینمود. انقلاب کشاورزی اهمیت آینده را از هر زمان دیگری بیشتر کرد کشاورزان همواره می بایست به آینده فکر کنند و در خدمت آینده باشند اقتصاد کشاورزی بر اساس فصول تولید قرار داشت که در آن مقطع کوتاه برداشت محصول ادامه ماه طولانی کشت بود شپنگام کشاورزان به پاس کارهای خود برای یک برداشت پرحاصل جشن می گرفتند اما چند روز بعد سرآغاز دوره جدیدی از کار روزانه طولانی در مزرعه بود اگرچه غذای کافی برای روز و هفته و حتی ماه‌های آینده وجود داشت اما ناچار بودند به یکی دو سال بعد هم فکر کنند. نگرانی درباره آینده نه تنها ریشه در دوره های فصلی تولید داشت بلکه در نهاد نامطمئن نظام کشاورزی بود از آنجا که اغلب روستاها از طریق زراعت و معدودی از حیوانات و گیاهان خانگی ارتضاق می کردند، همیشه گرفتار عواملی مثل خوشک سیل و بیماری های همه گیر بودند. کشاورزان ناچار بودند بیش از حد نیاز روزانه تولید کنند تا زخیره برای سال آینده داشته باشند. بدون قلات در انبار روغن زیتون در زیرزمین پنیر در دولابچه و سوسیس های آویزان روی تیرک های زیرزمین خطر قحطی در سالهای بعد آنها را تهدید میکرد و سالهای بعد دیر یا زود فرا می رسیدند کشاورزی که به فرضیه سالهای بعد اعتقاد نداشت امکان بقای طولانی هم نداشت در نتیجه، نگرانی از آینده از همان ابتدای نظام کشاورزی بازیگر اصلی صحنه نمایش ذهن انسان شد. از آنجا که کشاورزان به باران وابسته بودند تا مزارع خود را آبیاری کنند، شروع هر فصل بارانی به این معنی بود که هر روز صبح به افق خیره می شدند و باد را بومی کشیدند. آیا آسمان ابری است؟ آیا به موقع و به اندازه کافی باران خواهد آمد؟ آیا طوفان سهمگین همه بذرها را با خود خواهد برد و به نهالها صدمه خواهد زد در همین اسنا کشاورزان دیگری در دره‌های رودهای فرات و سند با نگاه‌های نگران سطح آب را نظاره می‌کردند آنها محتاج بالا آمدن سطح آب رودخانه بودند تا با محتوای غنی شسته شده از زمین‌های مرتفع آبنبارهایشان را پر کنند اما اگر سطح آب خیلی زیاد میشد و یا در زمان نامناسبی جاری میشد، تمام کشت را به اندازه خشکسالی تخریب میکرد. کشاورزان برای آینده نگران بودند، نه فقط از این رو که برای نگرانیشان دلایل زیادی داشتند، بلکه همچنین برای اینکه می توانستند کاری انجام دهند. آنها میتوانستند یک مزرعه دیگر را آماده کنند، آبراههای های جدیدی هفت کنند و بذر بیشتری بکارند. کشاورز نگران در تابستان متحمل کاری شاق و طاقت فرسا میشد برای کاشتن درختان زیتونی عرق میریخت که روغنش توسط فرزندان و نبهایش گرفته میشد و غذایی را که امروز شوق خوردنش را داشت برای زمستان یا سال آینده ذخیره میکرد. فشار ناشی از زندگی کشاورزی پیامت های دراز مدتی به همراه داشت که خود به بنیان نظام های گسترده سیاسی و اجتماعی بدل شد. متاسفانه کشاورز سخت گوش هرگز به آن امنیت اقتصادی که تا آن حد برایش تلاش می دست نمی در هر کجا حاکمان و گروه های ممتاز سر برمی و مازاد محصول کشاورزان را قصب می کردند و فقط مقدار ناشیزی را برای امرار معاش برایشان باقی می گذاشتند. این اضافه محصول قصب شده صرف سیاست، جنگ، هنر و فلسفه می شود. آنها قصر و قلعه و بناهای یادبود و معبد می ساختند. تا پیش از دوران نوین، بیش از 90 درصد از مردم کشاورزانی بودند که هر صبح از خواب برمیخواستند تا زمین را با عرق جبین خود حاصل خیز کنند. آنچه که باقی می ماند، توسط اقلیت ممتازی مصرف می‌شد که کتاب تاریخ پر از آنهاست، مثل شاهان، دولتمندان، سربازان، کشیشان، هنرمندان و متفکران. تاریخ توسط اقلیت معدودی رقم می‌خورد، در حالی که توده عظیم مردم به شخم زدن و حمل سطلهای آب مشغول بودند. مازاد غذای تولید شده توسط کشاورزان همراه با فنون جدید حمل و نقل در نهایت باعث ایجاد تجمعات هرچه بیشتر انسانی شد که در آغاز در روستاهای بزرگ و سپس در شهرکها و نهایتا در شهرها زندگی می کردند که در قلمرو پادشاهی ها و شبکه های تجاری جدید به هم متصل می شدند اما برای بهره شدن از این موقعیت‌های جدید، ازدیاد غذا و بهتر شدن حمل و نقل کفایت نمیکرد. صرف وجود امکان تقضیه هزاران نفر در یک شهرک یا یک میلیون نفر در قلمرو پادشاهی تضمینی برای نبود که بتوانند در مورد تقسیم زمین و آب، حل اختلافات و رسیدن به راه حل برای خشکسالی یا جنگ با هم به توافق برسند. و اگر توافقی وجود نداشته باشد کشمکش ها بالا خواهد گرفت حتی اگر انبار عمومی پر باشد این کمبود غذا نبود که باعث اکثر جنگ ها و انقلاب های تاریخ شد انقلاب فرانسه توسط حقوقدانان مرفه رهبری میشد نه توسط کشاورزان گرسنه جمهوری روم در سده اول قبل از میلاد زمانی به اوج قدرت رسید که ناوگان‌های حاوی گنج از دریای مدیترانه به حدی ثروت رومی‌ها را زیاد کرد که نسل‌های قبل حتی در وسوسه انگیزترین رویاهایشان هم تصور آن را نمیکردند. اما در دوره منتهای فراوانی بود که نظام سیاسی روم در کام یک سلسله های داخلی کشنده فرو رفت سروت مادی یوگسلاوی در سال 1991 برای سیر کردن شهروندانش به خوبی کفایت می کرد، اما با وجود این، این کشور در همام خونهای وحشتناک به تلاشی گرایید. ریشه چنین فجایعی به این امر برمیگردد که انسان در طی میلیون ها سال در چارچوب پیوندهای گروه های نفره نفر تکامل یافت. فاصله میان انقلاب کشاورزی و ظهور شهرنشینی و برپایی نظامهای پادشاهی و امپراتوری بیش از چند هزار سال نبود و این زمان برای شکلگیری یک غریزه همکاری کافی نبود. علا فقدان چنین غریزه زیستی در دوران خوراکجویی صدها ناشناس میتوانستند به کمک استوره های مشترک با هم همکاری کنند. اما این همکاری سست و محدود بود. گروه های انسان خردمند به زندگی مستقل خود ادامه دادند و اکثر نیازهای خود را برآورده کردند. اگر یک جامعه شناس احد كهن که در 20 هزار سال پیش زندگی میکرد و اطلاعی از وقایع بعد از انقلاب کشاورزی نداشت میتوانست این طور جنباندگی کند که اساتیر و افسانه ها وسعت محدودی داشتند. داستانهایی درباره روح اجدادی و توتم های به حد کافی قدرت داشتند. تا 500 نفر را درگیر یک معامله صدف دریایی کنند، های عجیب و غریب برپا کنند و برای نابود کردن یک گروه ناندرتال با هم متحد شوند، اما نه بیشتر از این. جامعه شناس اهد میتوانست میتواند باور داشته باشد که اساتیر و افسانه ها نمیتوانستند میلیون ها ناشناس را به یک همکاری احتمالی روزانه قادر کنند. اما عکس این هم ثابت شد. استوره ها نشان دادند که نیرومندتر از آنند که کسی به تصورش را بکند. وقتی انقلاب کشاورزی، فرصت ایجاد شهرهای پرجمعیت و امپراتوری های نیرومند را فراهم کرد، مردم به ابداع داستانهایی در مورد خدایان بزرگ، سرزمین مادری و شرکت های اقدام کردند تا بتوانند پیوندهای پیوند اجتماعی لازم را ایجاد کنند. هنگامی که تکامل انسان با سرعت حلزونی خود آرام به جلو می تخیلات انسانی در کار خلق شبکه های از همکاری وسیعی بودند که تا پیش از آن نظیر نداشت در حدود 8500 سال قبل از میلاد وسیع ترین مسکونی دنیا روستاهایی مثل عریها بودند که چند صد نفر را در خود جای می‌داد. در هفت هزار سال قبل از میلاد، جمعیت شهرک چاتولهویوک در آناتولی بین پنج تا ده هزار نفر بود که شاید بزرگترین منطقه مسکونی دنیا به حساب می آمد. در تایی هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد، شهرهایی با دهها هزار جمعیت در منطقه هلال حاصل خیز جوانه زدند که هر کدامشان روستاهای متعدد اطراف خود را در احاطه داشت. در مقطع سه هزار و صد سال قبل از میلاد تمامی درهٔ نیل تحتانی در پادشاهی اول مصر متحد شد و فرعونهایش بر هزاران کیلومتر مربع و صدها هزار نفر حکم میراندند در حوالی دو هزار دویست و, دو و پنجاه قبل از میلاد، سارگون کبیر اولین امپراتوری آکادی را بنانهاد که بیش از یک میلیون جمعیت و یک ارتش دائمی متشکل از پنج هزار و سرباز را در خود جای می داد. بین هزاره قبل از میلاد تا سال پانصد قبل از میلاد، اولین امپراتوری های عظیم در خاورمیانه سر بلند کردند، امپراتوری نوین سوری، امپراتوری بابلی و امپراتوری پارس اینها بر توده های میلیونی و ده‌ها هزار سرباز حکمرانی میکردند تا سال 221 قبل از میلاد خاندان شین چین را متحد کرد و بعد از مدت کوتاهی روم حوزه مدیترانه را متحد کرد مالیاتهایی بر چهل میلیون جمعیت شین وزمی شد تا مخارج ارتش دائمی را تمین کند که مرکب بود از صدها هزار سرباز و یک دیوان سالاری پیچیده که بیش از صد هزار نفر را در استخدام خود داشت. امپراتوری روم در اوج خود از بیش از صد میلیون شهروند مالیات می گرفت. این درآمد ارتشی دائمی را تامین می کرد که از۲۵ هزار تا 500 هزار سرباز را به خدمت گرفته بود و بجه لازم برای تاسیس شبکه راههایی را فراهم میکرد که تا 1500 سال بعد از آن کماکان مورد استفاده قرار می گرفت و تا و آمفتاات هایی که تا به امروز میزبان نمایش هاست. این بدون شک تحسین برانگیز است اما ما نباید توهمات رنگارنگ زیبایی را درباره شبکه همکاری وسیع توده‌ای در خود به وجود آوریم که در امپراتوری های فرعونی مصر و یا روم برپا بودند. همکاری بسیار فداکارانه به نظر میآید اما همیشه داوطلبانه نبوده و به ندرت تحت شرایط برابر صورت گرفته اکثر شبکه های همکاری انسانی دستگاه های ظلم و استثمار بودند. این همواره کشاورزان بودند که بهای شکوفایی شبکه های مختلف همکاری را با زخیره غذای خود پرداختند و معمورین مالیات با یک گردش قلم امپراتور تمام حاصل یک سال کار طاقت فرسای آنها را جارو می و با خود می بردند. آمفیتاترهای مشهور روم اغلب با کار برده ساخته میشد تا مرفهین و تنپروران رومی بتوانند در آنجا به نبردهای گلادیاتوری بیرحمانه نگاه کنند که توسط برده های دیگر انجام می شود. حتی زندانها و اردوگاه های کار اجباری شبکه های همکاری هستند و تنها زمانی می توانند عمل کنند که هزاران بیگانه به نحوی فعالیتهای آنها را اداره و هماهنگ کنند. همه این شبکه های همکاری از شهرهای بین و نهرین کوهن گرفته تا امپراتوری شین و روم نظامهای خیالی بودند آن هنجارهای اجتماعی که این نظام را برپا کردند نه در قرائز ریشه داشتند و نه بر پایه آگاهی های شخصی بنا شده بودند بلکه بر اعتقاد به استوره های مشترک استوار بودند چطور استوره ها می های کاملی را برپا کنند؟ ما تا کنون ای را در اینجا به بحث گذاشته ایم، نمونه پژو حال بگذارید به بررسی دو نمونه از معروفترین استوره های تاریخ بپردازیم. نظام نامه همورابی در 1776 قبل از میلاد که به عنوان یک دستورالعمل همکاری برای صدها هزار بابلی کوهن عمل می‌کرد و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در سال... 1776 میلادی که هنوز به عنوان دستورالعملی برای صدها میلیون آمریکایی نوین عمل می کند. در 1776 قبل از میلاد بابل بزرگترین شهر دنیا بود. امپراتوری بابل شاید در نوع خود بزرگترین بود که بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشت و بر بخش عظیمی از بین و نهرین حکومت می کرد. که شامل مجموعه عراق کنونی بخشهایی از سوریه و ایران امروزی بود. معروفترین پادشاه بابلی برای مردم امروز همورابی بود. معروفیت او قبل از هر چیز به خاطر مت نیست که به نامش ثبت شده که نظام نامه همورابی نامیده می شود. این متن مجموعهی بود از قوانین و تصمیمات قضایی که همورابی را به عنوان یک نمونه راستین پادشاهی معرفی میکرد و بنیانی بود برای یک نظام حقوقی یک پارچه در سراسر امپراتوری بابل و آموزه‌ای بود در مورد مفهوم ادالت و شاه راستین برای نسل آینده. نسل آینده واکنش نشان دادند. سرامدان روشن فکر و دیوان سالاران بین و نهرین باستان این متن را تقدیس کردند و شاگردان کاتب مدتهای طولانی بعد از مرگ همورابی و انقراز امپراتوریش به نسخه‌برداری از آن مشغول بودند. به این دلیل نظامنامه همورابی منبع گویایی برای درک نظام اجتماعی آرمانی بین و نهرینی باستان بوده. متن از آنجا شروع می‌شود که خدایان آنو، انلیل و ماردوک، خدایانی که رهبری زیارتگاه بین و نهرین را به عهده داشتند، حمورابی را برای برقراری عدالت روی زمین، از میان بردن شر و ستم و بازداشتن قدرتمندان از سرکوب ظعیفان منسوب کردند. متن سپس لیستی در حدود 300 حکم را در یک فرمول ارائه می‌دهد. اگر این یا آن اتفاق بیفتد این حکم اعتبار دارد احکام 196 تا 199 و 209 تا 214 چند نمونه هستند 196 اگر یک فرد مافوق مرد مافوق دیگری را کور کند باید چشم او را کور کنند 197 اگر او استخوان یک مرد مافوق دیگری را بشکند باید استخوان او را بشکنند هشت اگر کسی چشم یک آمی را کور کند یا استخوان او را بشکند باید شست شکل نقره را وزن کرده و تحویل دهد 199 اگر او چشم برده یک فرد مافوق را کور کند یا استخوان او را بشکند باید معادل نیمی از ارزش برده را به نقره وزن کرده و تحویل دهد نه اگر یک مافوق زنی از یک طبقه مافوق را بزند که باعث صدم دیدن جنین او شود باید ده شکل نقره برای جنین او وزن کرده و تحویل دهد ده اگر آن زن بمیرد، باید دختر مرد زارب را بکشند. 211. اگر او با ضربه ای به جنین یک زن طبقه آمی صدمه بزند، باید پنج شکل نقره وزن کرده و تحویل دهد. دیویست اگر آن زن بمیرد، او باید سی شکل نقره را وزن کرده و تحویل دهد. 213. اگر او زن برده متعلق به یک مرد مافوق را مضروب کند و باعث صدم دیدن جنین او شود باید دو شکل نقره را وزن کرده و تحویل دهد اگر آن زن برده بمیرد او باید بیست شکل نقره را وزن کرده و تحویل دهد همورابی بعد از تنظیم لیست خود دوباره اعلام می کند. اینها تصمیمات ای هستند که همورابی شاه تواناواز کرده و بدین وسیله کشور را به سوی حقیقت و شیوه صحیح زندگی رهنمون فرموده است. من همورابی شاه نجیب هستم. من نسبت به بشریت بی توجه یا بی احتیاط نبودم. این امانتی است که از جانب خدای انتیل جهت سرپرستی به من واگذار شده است و خدای مردوک به نیابت او مرا منصوب نموده. نظامنامه حمورابی ادعا می کند که نظام اجتماعی بابل ریشه در اصول جاودانی و جهانی ادالت دارد که توسط خدایان مقرر شده. اصول سلسله مراتبی در اینجا بیشترین اهمیت را دارند. بر اساس نظامنامه، انسان ها به دو جنس مذکر و مؤنس و سه طبقه مافق، عوام و برده تقسیم شدند. اعضای هر جنس و طبقه ارزش متفاوتی دارند. ارزش زندگی یک آمی مؤنس سی شکل نقره و ارزش یک زن برده 20 شکل نقره است در حالی که ارزش چشم یک آمی مزکر شست شکل نقره است. این نظامنامه یک نظم سلسله مراتبی خشک را میان اعضای خانواده مقرر می‌کند که بر اساس آن فرزندان افراد مستقل نیستند بلکه بخشی از مایملک ملک والدینشان هستند. از این رو اگر یک مرد مافوق دختر یک مرد مافوق دیگر را بکشد، دختر قاتل به عنوان قصاص اعدام خواهد شد. این ممکن است برای ما عجیب به نظر آید که قاتل از مجازات مبری میشود، در حالی که دختر بیگناهش کشته میشود، اما این از نظر همورابی و بابلی ها کاملاً عادلانه بوده نظام نامه همورابی بر اساس این فرضیه بنا شده بود که اگر توده تحت انقیاد جایگاه والای مقام رهبری شاهان خود را در نظام سلسله مراتبی بپذیرند و بر آن پای عمل کنند آنگاه تو میلیونی های امپراتوری قادر خواهند بود که به شکل مؤثری با هم همکاری کنند. در این صورت جامعه قادر خواهد بود و اندازه کافی برای اعضایش غذا تولید کند و آن را به صورت مؤثری توضیح کند و از خود در مقابل دشمنان دفاع کند و سرزمین خود را گسترش دهد تا به رفاه و امنیت بیشتر دست یابد. قریب به 3500 سال بعد از مرگ همورابی، ساکنان سیزده مستعمره انگلیسی در آمریکای شمالی احساس می کردند که شاه انگلیس با آنها ناعادلانه رفتار می کند. نمایندگان این مستعمرات که در شهر فیلادلفیا گرد آمده بودند در تاریخ چهار روم جویه 1776 اعلام کردند که توده های این مستعمرات دیگر تابع تاج و تخت انگلستان نیستند. اعلامیه استقلال اصول جهانی و جاودانی ادالت را اعلام کرد که در تشابه با نظامنامه همورابی ملهم از قدرت الهی بود. البته مهمترین اصول مقرر شده توسط خدای آمریکا تا حدودی متفاوت از اصول مقرر شده خدایان بابل بود. اعلامیه استقلال آمریکا ادعا میکند ما معتقدیم که اینها حقایقی بدهی هستند که تمام انسانها برابر آفریده شدند که خالقشان حقوقی مسلم به آنها اعطا کرده است از قبیل زندگی، آزادی و تلاش برای شادکامی. در تشابه با نظامنامه همورابی، اسناد تشکیل آمریکا وعده می‌دهد که اگر انسان‌ها بر اساس اصول مقدس خود عمل کنند قادر خواهند بود تا در ابعاد میلیونی به گونه‌ای مؤثر با هم همکاری کنند و در صلح و امنیت در یک جامعه عادل و کامیاب زندگی کنند. اعلامیه استقلال آمریکا همچون نظامنامه همورابی، تنها سندی در حیطه زمان و مکان خود نبود. بلکه همچنین توسط نست های آینده هم پذیرفته شد. در طول بیش از 200 سال، شاگرد مدرسه های آمریکایی آن را رونویسی و از بر هر دو متن ما را بر سر یک دوراهی مسلم قرار می‌دهند. هم نظامنامه همورابی و هم اعلامیه استقلال آمریکا ادعاهایی مبنی بر دفاع از اصول جهانی و جاودانی ادالت دارند. بر اساس ادعای آمریکایی‌ها همه مردم با هم برابرند در حالی که بابلی‌ها مردم را به طور قطعی نابرابر قلمداد می‌کردند آمریکایی‌ها مسلماً ادعا می‌کنند که خودشان بر ثواب هستند و همورابی بر خطا همورابی هم طبعاً متقابلاً پاسخ می‌دهد که او بر ثواب است و آمریکایی‌ها بر خطا اما حقیقت این است که هر دو بر خطا هستند همورابی و پدران تحسیس آمریکا هر دو واقعیتی را تصور می کردند که تابع اصول تخطی ناپذیر ادالت است، حال یا در قالب برابری و یا در قالب سلسله مراتبی. ولی جایگاه چنین اصول جهانی تنها در تخیلات بارور انسان خردمند و در استوره های ابداعی و حکایت های سینه به سینه است. این اصول هیچ اعتبار عینی ندارند. برای ما ساده است بپذیریم که تقسیم مردم به مافوق و آمی یک افسانه خیالی است. به همین شکل تفکر همه انسان ها با هم برابرند هم یک استور است. از چه جهت همه انسان ها با هم برابرند؟ آیا واقعیت عینی در ورای تخیلات انسانی وجود دارد که در آن همه ما واقعا با هم برابر باشیم؟ آیا همه انسان ها از نظر خصوصیات زیستی با هم برابرند؟ بگذارید سعی کنیم معروف در این سطر اعلامیه استقلال آمریکا را با عبارات زیستشناختی ترجمه کنیم. ما معتقدیم که اینها حقایقی بدیهی هستند که تمام انسانها برابر آفریده شده اند که خالقشان حقوقی مسلم به آنها اعطا کرده است از قبیل زندگی، آزادی و تلاش برای شادکامی. بر اساس علم زیست شناسی انسان آفریده نشدند آنها تکامل یافتند و قطعاً به این منظور تکامل نیافتند که برابر باشند اندیشه برابری به طور جدای ناپذیری در اندیشه آفرینش تنیده شده آمریکایی ها اندیشه برابری را از مسیحیت گرفتند که در آن هر فردی یک روح الهی خلق شده دارد و اینکه تمام ارواح در برابر خدا برابرند حال اگر ما به اسطوره مسیحیت اعتقاد نداشته باشیم، عبارت همه انسان ها با هم برابرند چه مفهومی خواهد داشت؟ تکامل بر پایه تفاوت بنا شده، نه برابری. هر فردی یک رمز ژنتیک در خود دارد که تا حدودی متفاوت با دیگران است و از زمان تولد در معرض تأثیرات محیطی است. این امر منجر به تکامل کیفیت متفاوتی می شود که با خود، امکانها و موقعیت‌های متفاوتی را برای بقا به همراه دارد. برابر آفریده شده، باید بنابر این به متفاوت تکامل یافته ترجمه شود. بر اساس علم زیستشناسی، از آنجا که انسان‌ها هرگز آفریده اند تا چیزی به کسی اعطا کند. این تنها یک فرایند تکاملی کور است که دور از هدف معینی منجر به تولد افراد می‌شود. شده توسط خالق میتواند به سادگی به متولد شده ترجمه شود. به همین شکل، چیزهایی مثل حقوق در زیستشناسی وجود ندارند. آنچه که وجود دارد، اندامها، تواناییها و ویژگی هاست. پرندگان پرواز میکنند نه به دلیل اینکه حق پرواز دارند، بلکه به این دلیل که بال دارند. و این حقیقت ندارد که این اندامها، تواناییها و ویژگی ها غیر قابل تغییر هستند. بسیاری از اینها دست خوش تغییرات دائمی می شوند و می توانند به مرور زمان کاملا از بین بروند. شطر مرق پرنده است که توانایی پرواز را از دست داده. بنابراین این حقوق مسلم باید به ویژگی های قابل تغییر ترجمه شود. و آن ویژگی هایی که در انسانها به وجود آمدن چه هستند؟ زندگی مسلما اما آزادی چه؟ چنین چیزی در زیست شناسی وجود ندارد. آزادی درست مثل برابری، حقوق و ها با مسئولیت محدود چیزی است که انسانها ابدا کردهاند و فقط در تخیلاتشان وجود دارد. از نقط نظر زیست شناسی نامفهوم است اگر بگوییم که در جوامع دموکراتیک انسانها آزاد هستند در حالی که در نظام دیکتاتوری غیر آزادند پس جایگاه خوشبختی کجاست؟ تا کنون بررسی های زیستشناسی برای رسیدن به یک تعریف روشن از خوشبختی یا روشی که بتواند آن را به گونه عینی ای محاسبه کند به نتیجه ای نرسیده. اغلب مطالعات زیستشناسی تنها به درک و شناخت لذت رسیدند که ساده‌تر قابل تعریف و محاسبه است. پس زندگی، آزادی و تلاش برای خوشبختی میبایست به زندگی و تلاش برای کسب لذت ترجمه شود. بنابراین ترجمه زیستشناختی اعلامیه استقلال آمریکا چنین خواهد شد. ما معتقدیم که اینها حقایقی بدیهی هستند که تمام انسانها متفاوت تکامل یافتند که با ویژگی تغییرناپذیر تغییر متولد معیینی شدند از قبیل زندگی و تلاش برای کسب لذت. مدافعین برابری و حقوق بشر شاید از شنیدن چنین استدلالی به خشم آیند. جواب آنها می تواند این باشد ما می دانیم که مردم از نظر کارکردهای زیستی برابر نیستند اما اگر اعتقاد داشته باشیم که ما همه در ذات خود با هم برابریم این ما را قادر خواهد ساخت تا جامعه ای کامیاب و پایدار بیافرینیم من بحثی با این ندارم این دقیقا همان چیزی است که نظام خیالی می نامم ما به نظم معینی معتقدیم نه به این دلیل که یک حقیقت نیست، بلکه به این دلیل که ما را قادر می کند تا به گونه‌ای مؤثر با هم همکاری کنیم و جامعه بهتری بسازیم نظام خیالی دستیسه های شریرانه یا اوهام بیهوده نیستند بلکه تنها روش هایی هستند که امکان همکاری مؤثر میان تعداد وسیعی از انسانها را فراهم می کنند. به خاطر بیاورید که همورابی می از اصول سلسله مراتبی خود با استفاده از همین منطق دفاع کند من میدانم که ما عوام و برده ها ذاتن متفاوت از هم نیستند اما اگر ما به این تفاوت باور داشته باشیم قادر خواهیم بود جامعه پایدار و کامیابی را بسازیم معتقدین راستین احتمالاً مطلب بالا برای بسیاری تکان دهنده خواهد بود اکثر ما امروزه یاد گرفته ایم که این طور اکسال عمل نشان دهیم. پذیرفتن اینکه که نظامنامه همورابی یک افسانه است برای ما ساده است. اما نمی‌خواهیم قبول بکنیم که حقوق بشر هم استور است. آیا پذیرفتن اینکه حقوق بشر فقط در تخیلات ماست جامعه را با خطر سقوط مواجه نخواهد کرد؟ ولتر می‌گوید خدا وجود ندارد. اما این را به خدمتکار من نگو تا مبادا همین امشب مرا در خواب بکشد. همورابی هم راجب اصول سلسله مراتبی و توماس جفرسون هم در مورد حقوق بشر همین را میتوانند بگویند. انسان خردمند حقوق طبیعی ندارد. همانطور که انکبودها، کفتارها و شامپانزه ها هم حقوق طبیعی ندارند. اما این را به خدمتکاران خود نگویید تا مبادا شما را امشب در خواب بکشند. چنین ترسی معقول است. یک نظم طبیعی، یک نظم پایدار است. هیچ احتمالی وجود ندارد که نیروی جاذبه فردا کارایش را از دست بدهد حتی اگر مردم دیگر به آن اعتقاد نداشته باشند. اما برعکس، یک نظم خیالی همیشه در خطر سقوط است زیرا بر پایه استوره ها بنا شده و اگر مردم اعتقاد خود را به استوره ها از دست بدهند، استوره ها نابود می شوند. برای تضمین کردن یک نظم خیالی ضروری است تا تلاش مستمر و فشرده صورت بگیرد. بعضی از اشکال تلاش ها صورتی خشونتامیز و اجباری دارند. ارتش، نیروهای پلیس، دادگاه و زندان پیوسته در تا مردم را وادار به رفتار کردن مطابق با نظم خیالی کنند. اگر یک بابلی کوهن چشم همسایه را کور کرد، نوعی از خشونت ضروری بود تا قانون چشم در مقابل چشم اعمال شود. وقتی در سال 1860، اکثر شهروندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که برده های آفریقایی انسانند و بنابراین باید از حق آزادی بهرمند شوند، یک جنگ داخلی خونین در گرفت تا دولت جنوبی را وادار به پذیرش آن کند. اما یک نظم خیالی نمیتواند تنها با زور پابر جا باشد و نیاز به وجود معتقدین راسخ هم دارد. شاهزاده تلیراند که مسیر هرفعی فرصت طلبانه خود را از زمان لوی شانزدهم آغاز کرد، بعدها جبهه عوض کرد و به انقلاب و حاکمیت ناپلئون خدمت کرد. اما باز به موقع تغییر موزه داد تا آخرین روزهای خود را برای اعاده دوباره سلطنت تلاش کند. او دهه ها تجربه حکومتی خود را چنین جنبندی کرد. با سرنیزه خیلی کارها را میتوان پیش برد، اما نشستن روی آن راحت نیست. یک کشیش ساده اغلب می میتواند کارایی صد سرباز را داشته باشد، حتی بسیار ارزانتر و موثرتر به علاوه مهم نیست که یک سرنیزه چقدر تیز است. مهمتر این است که چه کسی از آن استفاده می کند. چرا باید سربازان، زندانبانان، آزیان و پلیس بر یک نظم خیالی باشند که به آن اعتقادی ندارند؟ از میان تمامی فعالیت های مشترک انسانی، سازماندهی خشونت از همه مشکل است، گفتن اینکه یک نظم اجتماعی با نیروهای نظامی حفظ می شود بلا فاصله سؤالی را در ذهن ما برمی چه چیزی نیروی نظامی را بر پا نگه میدارد؟ غیرممکن غیر ممکن است که بتوان تنها با خشونت یک ارتش را سازمان داد. حداقل تعدادی از فرماندهان و سربازان باید واقعا به چیزی اعتقاد داشته باشند. خواه به خدا، شرف، سرزمین مادری، مردانگی یا به پول سؤال مهمتر حول رأس هرم اجتماعی می گردد. چرا آنها می‌خواهند نظمی خیالی را بر دیگران تحمیل کنند در حالی که خود به آن باور ندارند کاملا مرسوم است که بگویند سردمداران این را از روی حرس خودخواهی انجام می دهند. اما فرد خودخواهی که به چیزی اعتقاد ندارد نمی تواند حریص باشد برای برآوردن نیازهای زیستی عینی انسان خردمند نیاز به تلاش زیادی ندارد. پس از اینکه این نیازها برآورده شدند، پول بیشتری لازم خواهد بود تا هرم‌ها را بسازند، سفر دور دنیا را ترتیب بدهند، بودجه مبارزه انتخاباتی را تامین کنند، از سازمان تروریستی دلخواه خود حمایت مالی کنند یا در بازار بورس سرمایه گذاری کنند و پول بیشتری به دست آورند. همه اینها کارهایی هستند که یک خودخواه واقعی آنها را بی قلم داد خواهد کرد. دیوژن، فیلسوف یونانی که مکتب کلبی را بنیانگذاری کرد، در بوشک زندگی می کرد. وقتی الکساندر کبیر روزی دیوژن را که در حال آفتاب گرفتن بود ملاقات کرد، از او سوال کرد که آیا کاری هست که برایش انجام دهد؟ فرد کلبی به فاتح فاتحان جواب داد: بله، کاری هست که شما میتونید برای من انجام بدید. لطفا برید کنار، شما جلوی آفتاب رو گرفتید به این دلیل است که کلبیون به برپایی امپراتوری ها تمایلی ندارند و اینکه یک نظام خیالی تنها زمانی میتواند شود که بخشهای عظیمی از مردم و به خصوص بخشهای عظیمی از سردمداران و نیروهای امنیتی واقعاً به آن اعتقاد داشته باشند اگر اکثریت اسقفها و کشیشها اعتقادشان را به عیسی مسیح از دست میدادند مسیحیت دو هزار سال دوام نمیآورد اگر اکثر رئیس جمهورها و اعضای کنگره اعتقادشان را به حقوق بشر از دست می‌دادند، دموکراسی آمریکا 250 سال ادامه ی حیات نمی‌داد، و اگر اکثریت سرمایه‌گذاران و بانکها اعتقادشان را به کاپیتالیسم از دست می‌دادند، نظام اقتصادی نوین حتی یک روز هم برجا جا نمی‌ماند. چطور انسان‌های را وامی دارید به نظم‌های خیالی مثل مسیحیت، دموکراسی یا کاپیتالیسم اعتقاد پیدا کنند؟ اولاً هرگز اعتراف نمی‌کنید که این یک نظم خیالی است. شما همواره باید تأکید کنید که نظم حافظ جامعه یک واقعیت عینی آفریده شده توسط خدایان بزرگ یا قوانین طبیعی است. انسان‌ها برابر نیستند، نه به این دلیل که همو رابی گفته بلکه از این روی که انلیل و ماردوک مقرر داشته. مردم برابرند نه از این روی که توماس جفرسون گفته، بلکه برای اینکه خدا آنها را اینگونه آفریده. بازار آزاد بهترین نظام اقتصادی است. نه به این دلیل که آدام سمیت ادعا می کند، بلکه به این دلیل که این یک قانون تغییر ناپذیر طبیعت است. بدینگونه می توان مردم را به طور کامل پرورش داد. اصول هنر خیالی که در هر چیز ممکنی در این دنیا ریشه دوانده از لحظه تولد در ذهن مردم نهاده می شوند این اصول در قصه جن و پری نمایشنامه‌ها نقاشیها، نغمه‌ها آداب و رسوم تبلیغات معماری دستورالعمل‌ها و الگوهای مد رخت کردند به عنوان مثال مردم امروزه به برابری اعتقاد دارند پس این برای بچه پولدارها یک مد می شود که جین یعنی لباسی که در آغاز جامعه کارگران بوده را بپوشند. در قرون وستا مردم به تقسیم طبقاتی اعتقاد داشتند و هیچ جوانک اشراف زاده ای مثل یک کشاورز لباس نمی پوشید. در آن زمان آقا و خانم خطاب کردن دیگران یک رسم در حیطه اشراف بود که به بهای خون خریداری می شد. امروزه تمام مکالمات معدبانه با آقای عزیز یا خانم عزیز شروع شود صرف نظر از اینکه مخاطب چه کسی باشد علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین انرژی خود را به کار می برند تا به دقت تشریح کنند که چطور نظم خیالی در تمامی تار و پود زندگی انسان‌ها تنیده شده در لحظات محدودی که ما را به حال خود می گذارند، فقط می توانیم سطح را بخراشیم سه عامل اساسی مردم را معن می کند تا به این حقیقت پی ببرند که نظمی که زندگیشان را سازماندهی می تنها در تخیلاتشان هست. 1. نظم خیالی در کنه دنیای مادی نهاده شده است. اگرچه نظم خیالی فقط در ذهن ماست، اما می‌تواند در واقعیت مادی پیرامون هم تنیده شده باشد و حتی در سنگ هم حک شده باشد. اکثر مردم در جهان غرب امروز به فردگرایی اعتقاد دارند. آنها معتقدند که هر انسانی فردیتی دارد که ارزش آن به آنچه که دیگران راجبه او فکر می‌کنند بستگی ندارد. هر کدام از ما در درون خود پرتوه درخشانی داریم که به زندگی ما ارزش و معنا میدهد. در مدارس نوین غربی، معلم و والدین به کودکان می گویند هرگاه همشاگردیهایش او را دست انداختند و مسخره کردند، آنها باید سعی کنند که آن را نادیده بگیرند. این فقط خود آنها هستند که ارزش واقعی خودشان را می دانند. نه هیچ کس دیگری. در معماری نوین، این استوره از تخیلات بیرون می آید تا در گل و سنگ شکل بگیرد. یک خانه نوین مطلوب به اتاقهای متعددی تقسیم شده تا هر کودکی بتواند فضای خصوصی خود پوشیده از دید دیگران را داشته باشد تا به منتهای استقلال دست یابد این اتاق خصوصی تقریبا همیشه یک در دارد و در بسیاری از خانواده ها کودک حق دارد در را روی خود ببندد و قفل کند حتی والدین بدون در زدن و اجازه گرفتن حق ورود به اتاق را ندارند دیوارهای اتاق آنطور که فرزند می خواهد آراسته به تصاویر بزرگ ستاره های موسیقی راک است و جواب های کثیف روی زمین افتادند. کسی که در چنین اتاقی بزرگ می شود خود را یک فرد تصور می ارزش واقعی او از درون می جوشد، نه از بیرون. نجیبزاده های قرون وسطا به فردگرایی معتقد نبودند. ارزش هر کسی، توسط جایگاهش در سلسله مراتب جامعه و آنچه دیگران راجع او میگفتند تعیین میشد می, می شد. مورد خنده و تمسخور دیگران قرار گرفتن منتهای حتک آبرو محسوب می شد. اشراف به فرزندانشان می آموختند که به هر قیمتی پاسدار آبروی خانوادگی خود باشند. نظام ارزشی قرون بستا همسان با فردگرایی نوین تخیلات را رها میکرد و خود را با سنگ بنای قصر متجلی می ساخت در قصر به ندرت به کودکان یا هر کس برای رعایت حریم خصوصی فضای خصوصی اختصاص داده میشد نوجوان اشرافی قرون بستا در طبقه دوم قصر اتاق خصوصی با در بسته در مقابل والدین و تصاویر بزرگ از ریچارد شیردل و شاه آرتور نداشت. او در کنار تمام کودکان در سالن بزرگی میخوابید و در معرض دید همکان بود و همواره میبایست به نگاه و کلام دیگران توجه داشته باشد. کسی که در چنین مناسباتی پرورش یا بد طبعاً به این نتیجه خواهد رسید که ارزش واقعیش توسط جایگاهش در سلسله مراتب اجتماعی و نظر دیگران تعین می شود. دو، نظم خیالی تمایلات ما را شکل می‌دهد. اکثر مردم نمی‌خواهند بپذیرند نظمی که بر زندگیشان چیره است خیالی است. اما در حقیقت هر کسی در یک نظم خیالی از قبل موجود متولد می شود و تمایلاتش از زمان تولد با اسطوره های حاکم شکل می گیرد. در نتیجه امیال و خواسته های ما مهمترین پایه های حفظ نظم خیالی می شود. برای مثال محبوب ترین تمایلات مردم در جامعه غربی امروز تی یه قرون اخیر توسط استوره های کاپیتالیست، رومانتیک، ملیگرا و انسانگرا شکل گرفته دوستان اغلب به هم اندرز می دهند که از دلت پیروی کن اما دل انسان جاسوس دوگانه است که معمولا دستورالعملهایش را از استوره های کنونی حاکم دریافت می کند و اندرز از دلت پیروی کن حاصل ترکیبیست از استوره های رومانتیک قرن 19 و استوره های مصرفگرایانه قرن بیستم که در ذهن ما کاشته شده. یک نمونه مورد کمپانی کوکاکولاست که نوشابه رژیمیش را با این شعار به بازارهای جهانی عرضه کرد که کاری را بکن که احساس خوبی به تو میدهد نوشابه رژیمی. حتی آنچه که مردم به عنوان شخصی ترین امیال خود برمی معمولا توسط نظم خیالی در روحشان برنامه ریزی شده. اجازه بدید نمونه تمایل عمومی مسافرت خارج از کشور را به میان آوریم. هیچ چیز طبیعی و بدیهی در این نیست یک شامپانزه نر آلفا هرگز به فکرش خطور نمی کند که از قدرت خود استفاده کند و به یک مسافرت در قلمرو شامپانزهای مجاور برود سردمداران مصر کهن از ثروتهایشان برای ساختن اهرام و مومیایی کردن جسد خود استفاده می‌کردند ولی هیچ کدامشان ذهنیت ترتیب دادن سفرهای تفریحی و خرید در بابل یا اسکیبازی در فنیقیه را نداشتند مردم امروز بخش زیادی از پول خود را صرف سفرهای تفریحی دوران فراغت می کنند زیرا معتقدین راستین اسطوره های رمانتیک مصرفگرایی هستند. مکتب هنری رمانتیک میگوید برای اینکه بتوانیم حد اکثر قابلیت های انسانی خود را به کار گیریم باید تا آنجا که می توانیم تجربیات گوناگونی کسب کنیم. باید خود را در برابر طیف گسترده احساسات بگشاییم. باید وارد روابط گوناگون شویم. باید دستور غذاهای مختلف را آزمایش کنیم. باید بیاموزیم که از انواع مختلف موسیقی لذت ببریم. بهترین راه برای رسیدن به تمام اینها گسستن از عادات روزمره، درگذشتن از روشهای آشنا و سفر به سرزمینهای دوردست است. هر جا که امکان تجربه فرهنگ ها بوها، مزهها و های مردم ناآشنا وجود دارد. ما به کرات از اسطوره‌های رمانتیک میشنویم که چطور یک تجربه جدید چشمان مرا باز کرد و زندگیم را تغییر داد. می میگوید برای رسیدن به کامیابی باید تا آنجا که میتوانیم تولیدات و خدمات گوناگون را مصرف کنیم. اگر احساس می کنیم چیزی کم است یا آنطور که می نیست باید کالاهای جدید بخریم مثل یک خودرو، لباس جدید، غذای ارگانیک و یا از خدمات عرضه شده مثل خدمات خانگی، مشاور خانوادگی و کلاس های یوگا استفاده کنیم. هر آگهی تبلیغاتی تلویزیونی در خود یک افسانه کوچک از مصرف کالاها و خدماتی است که زندگی را بهتر می کند. رومانتیسم که مردم را به تنوع ترغیب می کند به طور کامل با مصرفگرایی سازگار است سمره آمیزش این دو با هم یک بازار تجربیات نامحدود است که صنعت جهانگردی نوین بر بستر آن به وجود آمده صنعت جهانگردی بلیت هواپیما و اتاق هتل نمی فروشد، بلکه تجربه می فروشد. پاریس یک شهر نیست و هند هم یک کشور نیست اینها هر دو تجربه هستند که مصرفشان افقها را گسترده تر می کند، قابلیتها را به فعل در می آورد و ما را کامیابتر تر می کند. در نتیجه، وقتی میلیونری در رابطه با همسرش با بمبست مواجه می شود، او را در یک سفر گران قیمت به پاریس می برد. این سفر باستا به یک میل شخصی نیست، بلکه باوری است سوزان به های رومانتیک مصرفگرایی یک مرد پولدار در مصر باستان هرگز در رویه های خود نمی‌دید که بحران رابطه با همسرش را با سفری در تعطیلات به بابل حل کند شاید به جای این برای همسرش یک آرامگاه مجلل می‌ساخت که او همیشه آرزویش را داشت اغلب مردم در اکثر فرهنگ‌ها همانند سردمداران مصر باستان زندگی خود را وقف ساختن اهرام می‌کنند بسته به نوع فرهنگ‌ها اسم، شکل و اندازه این هرم ها می می‌تواند متفاوت باشد آن هرم‌ها شاید مثلا شکل خانه‌ای در حومه شهر همراه با استخر شنا و چمن سرسبز یا یک بالاخانه با چشمه اندازی را داشته باشد اما افراد کمی هستند که چنین اسطوره هایی را که ما را بلا فاصله به احرام علاقه مند می کنند زیر سوال ببرند. س. نظم خیالی بین العذها نیست. من حتی اگر با نیروی خارق‌العاده موفق شوم تمایلات جنسیم را از قید نظم خیالی برهانم، باز تنها یک فرد هستم. برای مقابله با نظم خیالی باید میلیون ها ناشناس را متقاید کنم تا با من همکاری کنند زیرا نظم خیالی یک نظم ذهنی موجود در تخیلات خود من نیست بلکه است که به طور مشترک در ازهان هزاران و میلیون فرد دیگر جای دارد به منظور فهم این مطلب ما نیاز به درک تفاوت میان عینی، ذهنی و بین الازهانی داریم یک پدیده عینی مستقل از آگاهی و باورهای انسان ها وجود دارد. به طور مثال، رادیواکتیو یک استوره نیست. تشعشعات رادیواکتیو مدت‌های طولانی قبل از آنکه انسانها آن را کشف کردند وجود داشته و می‌تواند خطرناک باشد. حتی اگر انسان ها به وجود آن باور نداشته باشند، ماری یکی از کاشفان رادیواکتیو در خلال سالیان طولانی که به مطالعه مواد رادیواکتیو پرداخت، اطلاعی از این که این مواد می توانستند برای او خطرناک باشند نداشت و گمان نمی کرد که رادیواکتیو می تواند او را بکشد. با این وجود، او در اثر کمخونی آپلاستیک که ناشی از تششع بیش از حد مواد رادیواکتیو بود، جان داد. پدیده ذهنی چیزی است که وابسته به آگاهی و باورهای یک فرد معین است و این ذهنیت ها بسته به تصمیم فرد می‌تواند تغییر کند یا از بین برود. بسیاری از کودکان به وجود یک دوست خیالی باور دارند که دیگران نمی‌توانند او را ببینند و یا بشنوند. این دوست خیالی تنها در آگاهی ذهنی کودک وجود دارد و وقتی کودک به سن بلوغ می رسد و از این باور دست بر می دارد، دوست خیالی هم ناپدید می شود. پدیده بین در شبکه ارتباطی وجود دارد و آگاهی های ذهنی افراد بسیاری را به هم پیوند می دهد. اگر یک فرد معین عقاید خود را عوض کند یا بمیرد، برای بین الاسحانی اهمیت چندانی ندارد. اما اگر اکثر افراد حاضر در آن شبکه بمیرند یا عقاید خود را تغییر دهند، بین الاسحانی تغییر خواهد کرد و یا از بین می رود. بین نه جعلیات پلید و نه اموری پیش پا افتاده هستند. بین به بگونه متفاوت از پدیده های جسمی مثل تشعشات رادیواکتیو وجود دارد اما تاثیرش بر جهان مادی میتواند از این باشد. بسیاری از نیروهای قدرتمند تاریخ بین هستند مثل قانون، پول، کالا یا ملت ها. به عنوان مثال، پژو دوست خیالی مدیر آمل شرکت نیست. این شرکت در بین الاسهانی میلیون ها نفر وجود دارد. مدیرامل به وجود این شرکت باور دارد زیرا حیعت مدیره هم به آن باور دارند. به همان صورت که وکلای شرکت، منشیها، کارکنان بانک، کارگزاران بازار بورس، نمایندگان فروش، از فرانسه تا استرالیا همه به وجود آن باور دارند. اگر مدیرعامل به طور ناگهانی اعتقاد خود را به شرکت از دست بدهد، او را به سرعت به نزدیکترین آسایشگاه روانی روانه می‌کنند و شخص دیگری را به جای او می نشانند. به همین شکل، دلار، حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا در تخیل مشترک میلیارد ها نفر وجود دارند و یک فرد واحد نمی‌تواند وجود اینها را تهدید کند. اگر من به تنهایی اعتقاد خود را به دلار، حقوق بشر یا آمریکا از دست بدهم، اهمیت چندانی نخواهد داشت. این نسب‌های خیالی در بین‌المللی وجود دارند. بنابراین اگر بخواهیم آن را عوض کنیم، ناگزیر از این هستیم تا همزمان آگاهی میلیاردها نفر را تغییر دهیم که طبعا کار ساده‌ای نخواهد بود. تغییر در چنین ابعادی می تنها به کمک سازمانهای پیچیده‌ای مثل حزب سیاسی، جنبش ایدولوژیک و یا فرقه دینی عملی شود اما برای برقراری چنین سازمانهای پیچیده‌ای ناگزیریم تعداد زیادی از افراد ناشناس را متقاعد کنیم تا با هم همکاری کنند و این تنها زمانی اتفاق میافتد که این افراد ناشناس به اسطوره‌های مشترکی اعتقاد داشته باشند برای تغییر یک نظم خیالی باید قبل از هر چیز به یک نظم خیالی جایگزین اعتقاد داشته باشیم مثلا برای از بین بردن پژو ناگذیریم چیزی را تصور کنیم که قدرتمندتر باشد مثل نظام حقوقی فرانسه برای نابودی نظام حقوقی فرانسه ضروری است تا چیزی باز هم قدرتمندتر را تصور کنیم مثل دولت فرانسه و اگر بخواهیم این را هم از بین ببریم باید چیزی به مراتب نیرومندتر را متصور شویم راهی در فراسوی نظم خیالی وجود ندارد وقتی دیوارهای زندان خود را پس میزنیم و به سمت آزادی هجوم میآوریم در حقیقت به سوی محوطهٔ بزرگتری از یک زندان بزرگتر روانه میشویم